درس دوازدهم خواندن پوشاک مردان و زنان در ایران پوشاک مردان یکی از عناصره ثابت در پوشاک مردان از دوره باستان تا همین اواخر کلاه بوده است به عنوان مثال در عصر حاضر در میان اقوام لور کلاه های ساده و گردی که شبیه کلاه های مادها می باشد رایج است امروزه در لباس های رسمی و اداری کلاه جایی ندارد مگر در لباس های نظامی یا خدماتی لازم به ذکر است که ویژگی های به کار رفته در لباس مردان از قبیل شکل یقه و آستین ها، چین دامن ها و بلندی آنها، حاشیه دوزیها، ها، پهن های شال و نحوه بستن آن در هر دوره ای با دوره دیگر متفاوت بوده است پوشاک زنان از وضع پوشاک زنان به ویژه در صده های پس از اسلام به علت محدودیت هایی که در مورد زنان اعمال می شده، اطلاعات چندانی در دسترس نیست. که جای خود را به انواع امامه ها و سربند ها داد و نیز نوعی روسری که رفته رفته به پوشش های کاملتری نظیر چادر تبدیل شد بی تردید از اجزای جدایی نپذیر پوشاک بانوان ایرانی بوده اند. البته به علت کمبود منابع به درستی نمیتوان درباره برهنگی یا پوشیدگی زنان و دیدگاه های متفاوت درباره پسندیده یا ناپسندیده بودن لباس های اوریان در جوامع پیش از اسلام و حتی پس از آن قضاوت کرد. آنچه واضح است تعدد نقوش باقی مانده از زنان برهنه و نیمه برهنه کمتر از زنان پوشیده نیست. از میان متون کلاسیک نصر فارسی کیمیای سعادت ابو حامد محمد غزالی توسی کیمیای سعادت را نوشته است که در دو جلد است و خلاصه ای از کتاب بزرگ وی به نام احیاء العلوم است. احیاء العلوم به عربی و در باب اعتقادات و اعمال نوشته شده است. این کتاب توسط مریدالدین محمد خارزمی به فارسی ترجمه شده است. بدان که سفر پنج قسم است. سفر اول، در طلب علم است و این سفر فریزه بود چون تعلم علم فریزه بود و سنت بود چون تعلم سنت بود و سفر برای طلب علم برسه وجه بود یکی اون که علم شعر بیاموزد و در خبر است که هرکس در خانه خیش بیرون آید در طلب علم وی در راه خدای است تا باز آید و در خبر است که فریشتگان پرهای خیش گسترده دارند برای طالب علم و کس بوده است از سلف که برای یک حدیث سفر دراز کرده است و شعبی گوید که اگر کسی از شام به یمن سفر کند تا کلمه بشنود که وی را در راه دیدن از آن فایده ای باشد سفر وی ضایع نباشد لیکن باید که سفر برای علمی کند که زاد آخرت را شاید و هر علمی که وی را از دنیا به آخرت نخواند و از حرص به قناعت نخواند و از ریا به اخلاص نخواند و از پرستیدن خلق به پرستیدن حق نخواند آن علم سبب نقصان وی بود وجه دوم آنکه سفر کند تا خیشتن و اخلاق خیشتن را بشناسد تا به علاج صفاتی که در وی مزموم است مشغول شود و این نیز مهم است که مردم تا در خانه خیش بود و کار به مراد وی می رود، به خیشتن گمان نیکو برد و پندارد که نیکو اخلاق است و در سفر پرده از اخلاق باطن برخیزد و احوالی پیشاید که ضعف و بدخویی و آجزی خیش بشناسد و چون علت باز دارند به علاج مشغول تواند شد و هر که سفر نکرده باشد در کارها مردانه نباشد بشرافی رحمت الله و الله گفتی ای قرایان قر سفر کنید تا پاک شوید که هر آب که بر جای بماند بگندد وجه سوم آنکه سفر کند تا عجایب سن خدای تعالی در بر و بحر و کوه و بیابان و اقالیم مختلف ببیند و انواع آفریده های مختلف از حیوان و نبات و غیر آن در نواحی عالم بشناسد و ببیند که همه آفریدگار خیش را تسبیح می کنند و به یگانگی گواهی می دهند و آن کس را که این چشم گشاده شد که سخن جمادات که بی حرف و صوت است بتواند شنید و خطی الهی که بر چهره همه موجودات نوشته است که نه حرف است و نه رقوم بر تواند خاند و اسرار مملکت از آن بتواند شناخت خود وی را بدان حاجت نباشد که گرد زمین تواف کند بلکه در ملکوت آسمان نگرد که هر شبان روزی گرد وی تواف میکنند و عجایب اسرار خود با وی میگویند بیشتر بدانیم امرخیام امرخیام فیلسوف، منجم، طبیب و شاعر نامی ایران است خیام معاصر ملکشاه سلجوقی بوده و رباییات او در سراسر دنیا معروف است مقبره خیام در شهر نیشابور در استان خراسان واقع شده است ربایی، شعری مرکب از چهار مصرا که مصرا اول دوم چهارم وگاه و گاه هم سوم آن هم قافیه می باشند همان دو بیتی است از روبائیات امر خیام آن قصر که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و رو گرفت بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت هر سبزه که بر کنار جویی رسته است گویی زلبه فرشته خویی رسته است پا بر سر سبزه تا به خاری ننهی کان سبزه خاک لال رویی رسته است این قافله ی عمر عجب میگذرد دریاب دمی که با طرب می گذارد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری پیشار پیاله را که شب می‌گذرد. ایران را بهتر بشناسیم کوزگر یک استاد کوزگر در کارگاه کوزگری یا به طور عامتر سفالگری در ایران سابقه بس طولانی دارد در بیشتر موزه های جهان میتوان ظروف سفالی متعلق به ایران قدیم را یافت کوزه در اشعار فارسی نیز به کار رفته است خیام میگوید در کارگه کوزگری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش ناگاه یکی کوزه بر آورد خروش کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش اساتید فن اغلب یک یا دو هنرجو را به شاگردی میپذیرند و آنها را سالها آموزش می دهند آموزش روش سنتی آموزش در شرق و از جمله ایران است